بسم الله الرحمن الرحیم در بحث میراث زن بودیم رسیدیم به حالات خواهران پدری و مادری خواهران شقیقه خواهرانی که هم از طرف پدر هم از طرف مادر خواهر میت میشوند و اما لالاخوات لابن و ام فاحوال خمس اما خواهران پدری و مادری پنج حالت دارند انث فل اگر این خواهره پدر و مادری یک نفر باشد خواهره شقیقه یک نفر باشد نصف مال رو میبرد و ثلثان للاثنتين اما اگر دو یا بیشتر باشند پس نصف برای یک نفر بود دو سوم برای دو خواهر فصاعدتا و بیشتر اگر خواهران میت دو نفر و بیشتر بودند سهمیشون دو سوم مال هست ابن و ما الاخ لابن و امين لذكر مثل حظ الانثيين حالا اگر این خواهران پدر و مادری برادر پدر و مادری داشتند اون موقع این برادر یا برادران اینها رو خواهران رو تبدیل به عصبه می کنند که سهم برادر دو برابر سهم خواهر از میت می شود پس و مع اخیلی ابن و و همراه برادر پدر و مادری لذکر مثل حفظ الانفین این قانون اجرا می شود که برای مذکر دو برابر سهم زن هست یا یک مرد سهم انفین حضل انفین دو زن رو میبرد یعنی دو برابر یک زن یا سر نبیهی عصابتن این خاهرهای پدر و مادری با برادرشون که پدری و مادری هست عصابه میگردند لی استوائهم فی القرابت الی المیت بخاطر مساوی بودنشان در نزدیکی به میت در وصل شدن در رسیدن به میت پس با خواهر شقیقه با برادر شقیق عتبه میگردد و لهن الباقی مع البنات او بنات الابن و همچنین خواهران پدر و مادری می میگردند اگر میت خودش دختر یا دختر پسر داشته باشد دقت بفرمایید و لهن الباقی و برای خوهران پدر و مادری باقی مانده مال هست معنی این حرف چیست معنیش این است که عصبه می گردند مع البنات او بنات الابن همراه دختر میت یا دختر پسرش یعنی ابتدا سهمیه دختر میت یا دختران میت داده می شود و اگر همچنین دختر نداشت، دختر پسر داشت بعد از اون باقی مانده رو به خواهران پدر و مادری میدهند معنی این جمله است و لهن الباقی مع البناتی او بناتی الابن و برای خواهران پدری است باقی مانده مال همراه دختران میت یا دختران پسر لقولهی به دلیل فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم اجعل الاخوات مع البناتی آصابه خوهران را با دختران عصبه قرار دهید پس گفته بود پنج حالت حالت اول نیست بود حالت بعدی دو سوم بود حالت بعدی این بود که اگر این خواهران پدر و مادری برادره پدر و مادری داشتند اصابه می شدند حالت چارم اگر یک دختر یا دختر پسر داشت باقی مانده مال رو می بردند این در قسمت او زمانی که برادر داشتند خب لذکری مثل حضر الانثین بود برادر دو برابر خواهر رو می برد ولی الان که به وسیله حالت چارم این هست که همراه با دختران میید یا دختران پسرش بعد از این که دختران و دختران پس از سهمیشون رو بردن دیگه خواهران پدر و مادری باقی مانده رو میبرن. این حالت چهارم هست و تا اینجا بحث تموم میشود دیگه احوال اخوات خواهران پدری می آید. حالت پنجم رو که گفته بود خواهران پدر و مادری پنج حالت دارن در این درس نیاورده است به دلیل این که میخواد سرفجوی کند بحش طولانی نکند چرا؟ چون در درس بعدی یعنی حالات خواهران پدری در قسمت هفتمش چون اونا هفت حالت دارن هم خواهران پدر و مادری هم خواهران پدری با هم مشترکند اون چی هست؟ اون زمانی هست که میت پسر داشته باشد زمانی که میت پسر داشته باشد خواهران پدر و مادری ارث نبیبرند پس این حالت پنجمشون هست و هم این پسر پسر هرچه پایین تر براود و یا اینکه که میت پدر داشته باشد اگر میت پدر داشته باشد یا پسر یا پسر پسر به اتفاق فقه ها خواهران خواهران میت خواهران پدری و مادریش. پنج دیگه ارث نمی برند. اگر میت پدر یا پسر یا پسر پسر یا همین جور پایین تر داشت در این حالت خواهران پدر و مادری از میت ارث نمیبرند پس اینا پنج حالت بودند که بیان شدند ان الله در درس بعدی حالات خواهران پدری بیان خواهد شد که اگر میت خواهری فقط از طرف پدر داشته باشد چه حالاتی خواهد داشت موفق و پیروز باشید